اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العظیم مسلمان محترم خداوند متعال جل جل حکمت اصلی ماه مبارک رمزان تقوی کرده یعنی ای که خداوند متعال جل جلاله میفرمایه که ما روزه ماه مبارک رمضان بالای شما فرض گشتاندیم دینی قسمه که بالای امت های مسلمان که قبل از شما بودند یعنی پیروان پیغمبرای قبلی که اونها هم مسلمان بودند موحید یک یکتا بودن بالای از اونا هم روزه ماه مبارک رمضان فرض گشتنده بدیم و باز خدای عزواجل علت از اینه میگه حکمتش برای ما بیان میکنه که حکمت از این فرض شدن روزه است که لعلكم تا شاید و تا باشد که شما تقوی حاصل بکنین به ماهی ماه مبارک رمضان یک کورس عملی یک ماهی تقواست در هر مسلک اگر ما شما نظر بکنیم اگر یک کس انجینیر است یا دکتر است یا کامپیوتر کار است یا هر رشته و مسلکی که داره به خاطر ازی که در اون رشته و مسلک خود این مهارت داشته باشه و مهارت حاصل بکنه از طرف از این شرکت بر از اینا کورس های قصیر مدتی یک ماه و دو ماه جور میشد تا که عملا کورس یک ماه اشتراک بکنن و خود قوی بسازم ماه مبارک رمضان کرس یک ماهه تقویت ایمان و عمل مسلمان است. خدای عزوجل بر ما ای ماه مبارک رمضان یک ماه مبارک یک ماه یک ماه دارای از فرصت ها و دارای عبادت ها منحیث یک توفه بر ماوشما و شما پیشکش کرده تا که ما در ایمای مبارک رمضان یک ماه ایمان خود قوی بسازیم اعمال خود قوی بسازیم رابطه های خود قوی بسازیم و با زیازده ماه دیگه مطابق اینمی عمل بکنیم بنابراین وقتی که یک کورس می باشن در این کورس مزامین می باشد. و با وقتی که مزامین بود باز امتحان می باشد. باز وقتی که امتحان بود تعهدات رو گرفته می شن و وقتی که تعهدات دادیم باد بر ما شهادت نامده داده می شن. پس ما می گیم که کورس ماه بارک رمزان کورس یک ماه چی مزامین رو می و در هر مضمون ازو باید چند ببریم یک مضمونش ایمان است در ماه مبارک رمضان رابطه انسان مؤمن با خدای عزبا جل صد فیصد مستحکم میشه و ایمان انسان مسلمان صد فیصد میشه از مسلمان واقعی یک قسقه <تصفيق> که اون ایمان نشان میتند ایمان سفی سدند یک استاد بود یک استاد برای شاگرد خواد سه چار شاگرد را تربیه کرده بود سه چار ما برای زنا درس ایمان داده بود سه چار ما. بعد از که چهار ما وقت از اینا تیر شد استاذ خواست شاگردای خود امتحان که یا امی چهار ما که بر از ایمان گفتم گفتم گفتم آیا یا ایمانشان قوی شده یا نشده خیست کاکا در بلدس بیکر خوکار که اینو نوچه که امی صحیح تا نه فقط رو تصوری استاد که فقط مقصد خلقت خبر رو بندوش استاد به خاطر از اینکه شاگردای خود ايمانشون آزمایش بکنن هر چاره از رخواس که بچه امروز روزی امتحان است چی باید بکنیم لفمه بردن چهار دانه مرغ هاورده شما این چهار دانه مرغ بگیرین و هر کدامتان در یک جای برین که شما را هیچ کس نبینه هیچ کس شما را نبینه این مرغ ها علال کنه. هر کس مرغ خود خوده کنه و پس به هر کس که درست علال کرد و در جای علال کرد که هیچ کس را ندید باز به مرش نتیجی میتویمشم میگونی کامیاب است یکی از این شاکردار رفت در بین یک باغ دید که در باغ هیچ کس نیست آرام آرامیست و مردم هم نیست و دروازه باغ هم بسته است فورا کار گرفت و در بین از باغ مرغ حلال کرد آور استاد است خود مرغ همان استاد پرسانش کرد که عالا کردی که فا؟ کس نبودی دیدن نیو؟ هیچ کس نیست؟ گفت هیچ کس نیست؟ آفرین شاباس بیشی. شاگرد دومیش رفت یک زیرخانه را پیدا کرد، یک تاکوی را پیدا کرد. دوباره از تاکوی دید که هیچ کس نیست. این مرک گرفت و همینجه علاق کرد آورد بر استاد خواهد و پرسان شد که چی که دیگه پولیدم، پولیدم. پالیدم هر طرف که میرفتم میدم که مردم ما رو میبینن، و میبینند میبینند رفتم در ایک تاکوی دیدم که در ایک هیچ کس نیست من باید قضایت ها کردم و آوردم استاد بیش شباز سیومیشه پرسان کرد که تو چی کردی؟ گفت رفتم که یک تعمیر چند منزله بود این منزل هفتم و اشتمش نو جور میکردن کارگرها در منزل اول کار میکردن در منزل اشتمش هیچ کس نبود ما هم رفتم اونجا این قدم اونجا هیچ کس من ندید زرف هر کردم این اولو شاگرد چهارمی صبح پیشین شد پیشین دیگر شد دیگر, شد. دیگر شام شد نامده دو تا سه نفر شاگرده دیگر پستا دیدی که شاگرد بسیار ضعیف از بسیار تنبل است بسیار امون وقتم درس درست خوبی نبوده نما وقت امرت قبول کردیم و کار کردیم و ای تا نامده بلاخره ای شاگرد شوام نامده صبح شد، آمده امین مرقم زنده در دست شست هاورد قصر قرصانش این رفیق رفت در باغ هیچ کس نبود حلال کرد این رفیقت رفت از زیرخانه هیچ کس نبود حلال کرد اون رفیق دیگه رفت در منزل پنجم ششم روز تعمیر هیچ کس نبودی راه کرد تو چطور هیچ جایی نرفتی که ایر حلال میکردی گفت استاد ما با زیرخانه هم رفتم ده و باغ هم رفتم ده و تعمیرم رفتم لکن تو خودت ما گفته بودی که در جایی علاکو که کس نبینه هر جایی که رفتم خدای عزوجل رو می‌دید من مسلمان هستم پیش تو برم دست ایمان دادی پس خدای عزوجل خود مرا می‌بینه من از هیچ جای که خدا مرا نبینه تو خاطر من اینو ذبح کردن آدرس استاد گفت که اینی اصلاً درس چارمایی ایمان اینی که از گرفته شهادت نامه اینی مستحق میشه کسی مستحق میشه که در هر لحظه زندگی خود بدون از اینکه هیچ کس رو نبینه بفهمه که اگر من کدام گناهی را می کنم از عزوجل مرا می‌بینه خاطر خدا از گناه و از جنایت و از بدبختی دوری بکنه او کسی که در پشت در جایی که گوشم این رو رو شویف او خدا رو میشناسه و میگه من مسلمان هستم اون کسی که سر یک تجاوز میکنه ای او خدا را میشناسه اگر خدا را میشناخت باز جرأت عزیز نمی کرد که بره در یک جای گلش، حرام بخوره و مال حرام بگیره و روزه هم به دانش است و باز رو بخوره و بازو باز را پیشه خرما بخره و آیدخانه خود بازو را که از فامیل خود از خرمای حرام از خرمای حرام بازو خود افتار افطار پنال در ماه مبارک رمضان چطور ایمان یک نفر 100 درصد صدف میشه؟ ایمان اون یک نفر 100 درصد صدف میشه که از صبح تا و شام آب غذا خوردنی همه چیز پیشش می باشه، وطنا می باشه و هیچ کس نیست با جز از ذات خدای عزوجل باز رو نمیخواد چون خدای می میبینه. پس در ماه مبارک رمضان درس قوت ایمان است که ایمان انسان 100 درصد صدف میشه. اینا لعای یک مضمون ایمان است انسان و مسلمان در ماهی مبارک رمضان سعی و تلاش بکنه که سین و رابطه را مستحکم بسازن رابطی خدا با خدای عزواجل رابطی خدا با خدای عزواجل مستحکم بسازند. آیا رابطی خدا با خداوند متعال جل جلوهو از طریق فلسفه مستحکم بسازیم. از طریق رواج ها مستحکم بسازیم، از طریق گفهایی که بابا کلان و مادر کلانم برام گفتن از طریق قصه هایی که برم گفته شدن و یا رابطه خود با خدای عزوجل از طریق کلام خدای عزوجل مستحکم بسازین پس ما باید قرآن بفهمیم که خدای عزوجل در قرآن از دیمشان ما چی میگن ایا کن عبده و ایا کن از درس می زن خواست را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک می انال کسی که در کمک خواستن خود به ایوازه که به خدا رو جو بکنه به یک مخلوق رو میکنه رابطه خدا با خداوند متعال جل جلوه قطع کرد چرا که خدا میگه که بگو ایا کن خدا یا خواست را کرد میکنیم و ای کنال از نمیکنیم و خدای خاص از تو کمک میکنیم و وقت رابطه انسان با خدای از زوجال مستحکم میشه و قوی میشه که در رابطه دیگر هم انسان در نظر داشته باشه رابطه انسان با خود انسان انسانی که پیش خود درو گوی است انسانه که پیش خود فریب کار است، انسان انسانه که دیگران نمی اما خودش می فهمه که مدروگ و فریبکار ظالم و خاین هستم باز هم خداوند رابطه از قبول نداره حتی <تصفيق> میگه در نماز جماعت که میرین به خاطر از این که رابطه ایتان با خودتان خودتان به شخصیت خود احترام بگنین وقتی که به نماز جماعت میرین ندبین آله ما که نده یک تیر میشه میگه خیلی از اگرکات تیر شود آهسته آهسته با سکون با کار با مسجد برو باز اگر یک هم تیر شد خیر اگرکات تنهایی بخون اما شخصیت خود از دست نتی شخصیت خود از بین نبر رابطه سیومی رابطه انسان باید با مخلوقات خداوند مطال جل جلوه مستحکم شود تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی در ماه مبارک رمضان که ای خدا قبول میکنه که یک نفر در سر خانش ده قسم غزاست پنج قسم غزاست و در قریه و در شار و در منطقیش کسای هستن کسای هستن در منطقیش که افتاری ندارن بس هر چیز ندارن پیش از قیمتی آرد دو مرتبه از نان بای نان میبرد آل که قیمتی جده سابق ده تا نان میبرد 5 پنج نان میبرد تیداد اولاده شما قدر است لیکن غذای خدا کم کرده او حاجی که هر سال حج نفری و عمره نفری کرده میره و کسایی هستن طفلایی که از گشنگی و از بیدوی می رابطی ازی با اونا قطع است آیا خدای از زوجه حج نفلی ازیره و عمری ازیره قبول میکنه که رابطی خدا با خدا مستحکم می و رابطیش با خلق خدا قطع است ماه مبارک رمضان ماه رحمت است ماه مغفرت است ماه آزادی از آتش دوزخ است لکن با کسی که راهیم یرحمه همون رحمان او کسی که قلب مهربان داشته باشه او رو خدای عزبجل سرش رحمت خدا میفرسته. اما کسی که اگر بینی که نابینا و چا هست اگر حرام بمشینی کنا هست ما ولد سر رایم مردم از گشنگی می مرن. در زمستان مردم از خنک می مرن. مردم در زیر خیمه ها خوراک ندارن تفلک های محاجر و فیچاره و مسکین در زیر خیمه ها از گشنگی و از بیدوایی و از بیاوی و از دست خونک می مورم و گردن خود گل را رمه و در محتر کنویزین چندین مرتبه می حج نفلی می کنم عمره نفلی میکنم، کنم دیو آروسیم و در محفل شش سطر بگی و اف سطر پگی مردم خزا می توم. یا خداوند رحمت و خدا بالای ازی نازل میکنه پیغمبر خدا میگه: که ارراحمونه یرحم همون رحمان کسر خداوند بالایش رحمت و خدا میفرستن که قلب مهربان داشته باشه بخاطر کمک کردن با یک مسکین و یک فقیر چلی فلسفه میگیم چلی فلسفه میگیم اما بخاطر ازی که ما من مردم در مردم افتخار بکنم اگه یک کنیم لکه پیسی حجم میشن باید یک لک لکه را برای مردم توفه بیارم باز برای پیسدارا توفه فبرشان بتم و باز بخیزم اونجا افتخار بکنم و برمسکیل ها حتی زکاتی که سر فرض است زکات ها نتم آیا او پیسه که زکاتش به فقره ها کس ندادن از او پیسه به حج بره حجش خدا قبول میکنن تو از حق دیگر ها به حج رفتی اول زکاتش باید بیتی حق فقیره باید بیتی و فی اموال هم صفات مؤمن که خدای عزواجل و حالایشان در حم میفرسته صفتش خدای عزواجل در قرآن میگه که او کی است و فی اموالهم حق کن لسائل و المحروم که در اموالش حق برای سؤال کننده ها و بره محرومین باشه. خود فرید میتنند سرد سردی سخرنش قسم بذاخ است. پس شدید آنقدر قدر میخوره که صبحکی وقتی که از خواب بیدار میشن آار قش توس کرد. نان چاش به خاطر عزی باید نخوری که نان چاش به خاطر عضی باید نخوری؟ که پیس نان چاوش تا فقیر و بهک مسکین و بر بیووه بیتی ای حق نان خدا چی که دو چنده نان چاوش دغه را نصفش ده سر شاو و نصفش هم در پس شوی تقسیم میکنه بازی منتظر رحمت خدای عزوجل است والله لم یؤمن والله لم یؤمن والله لم یؤمن پیغمبر خدا صلی الله علیه و گفت قسم از بخدا که ایمان نآورده این پیغمبر خدا ایمان نورده گفوه امضاهایی کهش کم سیر خواب بکنه و امضاهای از او گرس نخواب بکنه. ایمانش اخدا یا از قبول نمیکنه. روزش اخدا قبول نمیکنه. امضاهای چقدر است ایپای پیغمبر بر خدا؟ چل خانه به طرف راست، چهل خانه به طرف چپ، چهل خانه به طرف شمال و چل خانه به طرف جنوب. و اگر در تامید زندگی میکنی که سط منزل است، چل خانه بالا و چهل خانه فاین استو. جمعه همسایه تو اصاف میشه در قریه ها که از بیدوهی مورد و ما سرد سرخان ما دع قسم کزاست ما امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ما میریم در حجم میگیم اللهم لبی که لا شدی که لکه شیطان سر ما میخنده که تو خودت به یک شیطان مبدل شدی که در قلبت هیچ مهربانی نیست در قلبت هیچ مهربانی نیست تو قلبت مهربان بساس تو رحم باداشته باش ارحم و من فی الارض یرحم و من فی السما شما سر اهل زمین رحم بکنین شفقت بکنین تو کسانی که در آسمان ها هستن اونا بالای شما رحمت بکنن ملائکای خداوند در واده جان کندم سر تو رحم بکن و تو را جانتا با آسانی بگیرم خداوند را تلاحم بکنه. امروز آیا حجی کسران؟ آیا روزی که باز او روز روزی است که شهادت داده میشه؟ آیا خداوند در روزی ایت برای کسی شهادت نامهای کمی میابیه میده که برای خود برای اولاد خود از اون که لباس قیمتی نیست می خره. ولی برای یک یکیم متر چل روپی و پینجار روپیت که نمی خره چون خدا فریب می تیمی مسلمان ها شهازت نامه تقویر که می گیره کسی می گیره که وقتی برای اولاد خود لباس می خره برای خانم خود لباس می خرم و اعضای فامیل خود لباس می برای خود می خرم که آیا اونجا یک تفلک کرایچیوان است که ترسول تکت تک داره زن بیره که تکت تک لباس هایش اولادای شهیدهای این ملت است که یک میلیون شهید اینجا یک میلیون. شهید دادیم و این شهیدات فلکایشان به بیسر نوش ماند. او کسی که در روزیش در قربانیش در عملش ریا هست یک ذرا ریا هم اگر در عمل انسان باشه خداوند عمل انسان قبول نمی کنه ختم کردیم چی کردیم ختم ما و شما کل ختم در شخصیت ما هیچ تاسی نکرد در ختم قرآن نقل نکرد کدام پیغمبر آی رسول خدا ایک کرده کرده نقل آورده در مسجدش اصحاب کرام نقل نیتوزی کرده اگر تو بسیار ختم کردی اونو فیغنده کتبو بر, بر بر یک فقیر برای یک مسکین برای یک بیچاری که خزانه داره برای کسی که طفل در شفه خانه در دوا دوا میگرده دو, می دو صدریفه دارد دوای دو طفل شفص صدریفه میشه اونو پنی صدریفه رو برازو بتی که خداوند متعال در ماه مبارک رمضان بالای تو رحمت بکنه به نقل خورو به شیرین خورو به چاکلیت خورو به پلو خورو به در مسجد انگور توضیح کننده این کاراییست که نور رو پیغمبر خدا کردن و ما نمای ببارک رمزان بیگفاستی ماده میگفا خودا هم نیش مصروف ساختیم و خدا پریب میتیم و خود خوازی میتیم این اولا ما دین رو گرفتیم قرآن ختم که قرآن در شخصیت تازیر بگنه قلبتا میره بان بسازه از چش مبارک رمضان نری اون چشمی که در ماه مبارک رمضان یک قطر عشق از محبت و از ترس خدا از چشمش یک قطر عشق نری اون همه که من تقوی حاصل کردم اون خود شاهدنامه دروغی گرفتند اون خدا شاهدنامه نمیده اون خدا شاهدنامه نمیده. او نمیده ماه مبارک رمضان گفت ماهی کورس یک ماهی تقوه است و تقوه تقوه چی هست تقوه چی هست برادر عزیز تقوه چی هست از یک صحابی مبارک برسان کردند که تقوه چیست که ما در ماه مبارک رمضان با تقوه شویم شو با تقوه شویم شو و صحابی مبارک گفت حضرت عمر را دیلتالانهو از یک صحابی مبارک پرسان کرد گفت که تقوی چیست حضرت عمر صرف خودش بحره نی بود لیکن بخاطر از این که خوب بفامد می را یک کس پیگه پرسان بگن این تقوی را برای ما درست بده تقوی چیست آیا ما با تقوی هستم یک یعنی مای رمزان برازیست که تو با تقوی, آیا ما با تقوی شدیم گفت یا عمر شد که تو در یک دشت رفته باشی. یا یک دشت و این دشت یک خار باشه یک تک خار باشه و پایای تو باشه پایای تو است دشت است دشت هم فرست خار است و پایای تو است دمید دشت چی قسم را میری؟ گفت آهسته سعی می, می کنم می کنم می کنم باز باد از اون می بینیم که این قسمت خاک نیست پای من می مانم. اول خوب فکر میکنم که نمیشه پای من می مانم نیست بعد از پای من این که تا که تو یک کار را تصمیم اول خوب فکر کنی که به این رضایت خدا و رضایت رسول خدا ای کار من را قران مرا قرآن تایید میکنه؟ باز وقت از روی آی کارا میکنه. یک نفر در ماه مبارک رمضان پنجش ختم کرد. ماه مبارک رمزان هم روزه گرفت. خوب در تراویه هم آمد خوب در صفحه اول هم شیش و خودشان فکر میکنه که من با تقواه هستم وقتی که بعد از رمضان توی بچیش شد یا توی نواسیش بود گفت بدون دستی ساز در توی <تصفح> ای توی نمیشن بدون ساز توی ما نمیشن بدون اوتل و رقاصه ها دوی ما نمیشه. ای با تقوه هست ای نامی تقوی گرفته خودت خود فرید میتوی بگه اینال ماه مبارک رمزان اگر کس میخواد که شایدنامی تقوی رمزانه و دست بگیره و در روزیت ایت ای نامه در دستش باشه ای باید به خوخ متعال جل جلوهو جل در تمام مزامین باید ای گرفته باشه ساعت کنجکت 50و گرفته باشی چشم در روزه چند برا گرفته سعی سکورس نیست مزمون دارم یک مضمونش حبس چشم است چه قدر چشمه که از نو حفظ کردی او کسی که در ماه مبارک رمضان هر شب سدیال میبینه چشمت روزدار است ما روزه گرفتیم و در ختم رمضان مولوی سلیمون برام گفت که این شالنامه تقوا را حاصل کردی. لکن مزامینیش مولوی سلیم نگفت. شالنامه گرفتیم مفت. و دیگه رمضان گوش است. نفس گوش. او که دانش روزدار است و در گوشایش موسیقی متزل است کسی که صدای یکزدن رقاصه را خواندانایش هم در روز قیامت در گوشایش سر باو میشه سر باو میشه میباز میکنی من با تقوه روزه دارم پیغمبر خود صلی اللہ که من نمیده قول زوری و عمل بی کسی که سخنای زشت و سخنای بد و اعمال زشت ترک نکرد خداوند به این نیاز ندارد که دان خداوان اصنوشی دنیا و خوردنی ها پت کنن آیا این نفر که شاهنامه میگیره در مضمون حفظ گوش چند نمره گرفتن؟ خودت نه آبرادر شعاتناما را وقتی میگیره که خودت با خدای پاک خودت خود نم بته سرخخت را دم دیدیم به نظر ما بسیار خوب آدم هستی و مستحق شاهژنا هستی اما آیا خدای از زوااج که مضول بردوداد که گوشت روزدار باشن گوشت؟ الفاظ زشت نشنون زبان روزدار باشد زبان روزدار هست در روزه من یک نفاره که که دیگه کس مذاق میکنه بساری کسا حتی آنقدر دوز است، آنقدر بیغیرت است، آنقدر بیمان است که حتی که رفیق خود در سر زن خود هم مذاق دارد ازن ازور داشت نمی و او خواهر ازور داشت نمی او مادر ازور داشت نمی ته و باز میگه که من مسلمان با غیرت روزدار است و ما تقوه حاصل می کدم ایرا باید بفهمه که از تو که داوود به غیرت بیمار اصلا هیچ وجود نداره که به ناموس تو رفیق تجاوز نکره و تیشانی تو ترش نمیشه سرنش خنده میکنی که رفیق ما مز... موزی مزاح داری لعنت خدا سر اوت مزاح سر اوت مزاحی سرات مسلمان بیغیرته که در جنت دوز داخل نمیجم و دوز است که زنشه در مقابل کمری اکاسی آراش کردنشان بتن خانم خدا دختر خودن اولاد خوده در معرض گفته های قرار بده بتوی دیگرها او را دشنام بتن و ایش متعصر نشد آیه ای زبان روزدار است آیه ای سهت نمره خواب درو که 24 ساعت مذاق میکنن 24 ساعت سردگرها رو شخمدی میکنن 24 سال سردگرها رو استهزه میکنن 24 سال در دروغ و در خیبت مصروف است و باز من روزدار هستم برادر عزت عمر ردیلتالانهو بر وشی خود میگو که یا عبدالله پیش ازی که دگرات رو محاسبه کنم خودت خودم محاسبه بکنم خود شادت نامن ورقه پشوید با چشم چند نمره گرفته در روزه چشم سفر ارشاو روزی خوده با دیدن زنای نامحرم افطار میکنم. کنم زبانم سفر به اخلاق چند گرفتی بیچاری کساست حتی رمزان مبارک متهم می که روزه تو مای بد اخلاقیستی. بالا روزه داره اصابش خراب است. روزه داره نشین نسور سری شما خدا علاقت کنه. خدا علاقه کنه و مسلمان که روزه را رو متهم می‌سازه، روزه را رو متهم می‌سازه و بازم میگه مجان کردم به خاطر که روزه هستم روزا روزه ما اخلاق است. رسول خدا میگه که اخلاق مسلمان باید بالاترین درجه خود برسه اگر کس درد دادش دشنام دادش از یخنش گرفت که مکر تو جنگ میکنم برش بگه که این نیسا ایمان من روزدار هستم مسلمان من جنگ نمیکنم ما دشنام نمیکنم رسول خدا روزدار ای قسم توصیل میکنه ما مردم افغانستان روزدار روزدار دشنام میتین چون روزدار بعد اخلاف شدن چون روزدار دمای روزه میگه بیدار جنگاز یاد میشن در ماه مبارک رمضان یکی دیگر موی کنک میکنه در ماه مبارک رمضان در موتر دشنام است. در ماهی مبارک رمزان نشیه سگریت نسوار در سر آمده از این خاطر حرکت دشنام میته. تو که رابطه تا با مسلمانان مستحکم نسازی رابطه تا خداوند قبول میکنه دسته دست روزا چند نمره گرفته دا. بر راز وجودت یک مزمون از در رمضان، باید در هر کدامش نمرات تا اصاب بکنی دسته که میگیره روز را که به حرام دراز میشن روزدار هست دسته که از جیبش به یک فقیل چیده نمیرسه روزدار است؟ پس باید دستمم روزدار باشه پایم هم روزه دار باشم. پایم هم روزه دار باشم. روزه سینمای پامی رو، روزه سینمای تیمورشاهی، روزه دانش هست دو صد دوز صدت وقت خودت در رقاص خانه ها تیر میکنی و باز میگه من روزه دار هستم. من روزه دار هستم. تن روزدار روزه دار باشم. آیا او قلب که با دیدن مسکین و یتیم و بیچاره و فقیر ایچ متعصر نمیشه و قلبش بسل قلب فرعون شده این هم روزدار است این قلب روزدار است میدید روزدار باشه که در ماه مبارک رمضان غذایت نصف شود و او کسی که در ماه مبارک رمضان اگر ثابت ملایی دانگکی میخرید، اول کارتنکی مت بس جی چهار تا ملایی می‌خرافت بیا می‌دیش کی روزادار اما در همسایگیش او چه با جسم خود میبینه لا که چون قلبش قلب فرعون گشته میدیش میدی فرعون گشته کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی باشد چون لا لا ولی کار <تصفح> فرعون میکنی قساوت سنگدلی تندی بداخلاقی جنگ داوا سر رحم نیست، سر فقیر نیست، شفقت نیست، شفقت یعنی که به فقط رمضان یعنی این بکنی بر که چی می نه که چی چی اگر مولوی وقت تراویره. سر مولوی تفسر است که این مولوی تنبل است ایسای نماز نمیتون داملا سب فلانی مزید در 25 دقیق 29 رکات تیرون میخوانن با, با تقویه هستیم ماه مبارک رمزان ماه تعخدات هست ماه مبارک رمزان در تاریخ اسلام امروز در افغانستان ماه مبارک رمزان هم میگه ماه خوست ماه تمبلی هست روي تنبلیست لكن قرآن و رسول خدا و تاریخ اسلام چه میگرم از اون از روی بدر غزوی بدر که مسلمان ها بالای کفار غالب شدند اگر رمضان ماه خومی بود ماه رمضان ماه جهاد است ماه قوت ایمان است در ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمزان مسلمان ها غزوی بدر انجام دادن یوم الفرقان در ماه رمضان است روزی که فرق شد بین کافر و مسلمان مسلمان ها بیروز شدند ملائک های خداوند نازل شد در ماه مبارک رمزان مکیم کردن فتح شد در ماه مبارک رمزان امروز بسیاری از جوانا و بعضی از نیمه مسلمین تاصیب جشا قطع میزنند تاصیب جشا و فلم سهل میکنند تاصیب جشا قمار میزنند در ماه که رحمت خداوند زیاد شد گناه همد ازیاد میشن در وقتی که ملائکه آی خدا نازل میشه که تو رو در آلت عبادت ببینن این روزدار قطع میزنن باستاسات دا و جیروز خو خب میکنن روزی از به رو خدا خود قبیل کرد پرسم نرسی به کعبه احرابی این راکتو می روی به ترکستان هست یا نفر یا کسی دید کجا میری؟ طرف ترکستان دوان هست عج می رو عجی طرف ما تقوی کردیم تصایب اجاخه فلم اینا نم فلسل میکنن فکای میگن با سوکش تا دوجو خرمیکنم به خاطر ازی که من چی هستم من روزه دار این شناختنامه تقوا را هرگز اصیل نمیکنن چرا خدا فرید میدین چرا خدا فرید میدین و چرا خدا بازی میدین و چرا با خداوند فریدکاری میکنین برادران محترم ماه مبارک رمضان پیش ازی که شناختنامه را در روزی ایز بگیری پیش ازی که شناختنامه را در روزی اذ در ماه مبارک رمضان، ماهیست که باید با خدا تعهد کنیم باید تعهدات است به شرط را حاصل میکنی که با خداوند متعهد باشیم خدایا پیش از رمضان در آروسیم رقاصه ها و سازنده ها و دولچی ها را و چه نفر که داروسیم دا بود گناه هر چه نفر در کلیمه بود من سبب گناه شدم خدا یا توبه کردیم؟ آل تعهد میکنه که اگر دیگه آروسی کردم دیگر از و لعب و از انداختن مردم در غذب خدا و از نازل کردن غذب خدا در قریم اشتناه کنم این تعهد باید بکنیم آیا آماده هستیم تو یا با خدا بکنیم؟ هیچ کس گفت نمیزنه اصلای من با هم با خدا بزنیم با این با خدا تعهد بکنیم که خدایا اگر لباس بر اولادای خود خریدم خیر از بندازه توانیم یک دو متر سه متر بفقران مسکین و بیوابیتی من بخریم آیا این تعهد با خدا میکنیم؟ به این با خدای خود تعهد بکنیم که دای این مسلم که پشت اسلام همیشه بر از بن بردن مقدسات ما به خاطر آدات ما به خاطر فرهنگ اسلامی به خاطر قم از بن بردن حکم قرآن کار میکنن ای با خدای عزوجل تعهد میکنیم که خدایا ما سعی و تلاش میکنیم بعد از رمضان هم ارتباط خدا با مسجد قطع نکنیم تعهد میکنه با قرآن تعهد میکنیم که رابطه خدا با قرآن قطع نمیکنیم وقتی که ما ایک سم تعهدار با خداوند خدای مدعان خدا با خود تنها ششیم و عشق و عشق ندامت از چشمار ما پاون آمد و به خداوند تعهد کردیم که خدایا و دیگه سبب فساد نمیشم آیا تعهد میکنیم که برای اولادهای ما که تمام روز دشمنای اسلام بوتنشان میتن برای اولادهای ما دشمنای اسلام فر تعلیم میتان به حیایی تعلیم میتان قتل تعلیم میتان از طریق فیلم ها و سریال ها تمام جنایت ها را تعلیم می آیا با خدای عزوجل تعهد میکنید که به اولادای خود خدا را معرفی بکنیم؟ به اولاد خود پیغمبر خدا را معرفی بکنیم. به اولاد های خود برادر خود با با اینا اصحاب کرام معرفی بکنیم تا محبت از اینا با خدا و با قرآن و با کتاب خدا زیاد شود. اگر کس این تعهدات حقیقتا و صادقانه در ماه مبارک رمزان با خدای عز وجل بکنهد حقیقتا در روز اول عید خداوند متعال لل جل جل بر ازی شهادتنامه کامیابی تقوار رسید میکند خدا تعهد بکنیم که ما مانع ازدواج دو جوان مسلمان نمیشون که به خاطر رواش ها بگیم تا وقتی که چم سیر برنج ناوردیم تا وقتی که سیلک لک تویانم ناوردیم تا وقتی که در اوتل فلانی آرسی نکردیم این طرح ما آرسی نمیتیم ای کار شیطان رو میکنند با شازمامی تقوی خدا خودش پاره پاره کرد دگر. به ایوازیزی که به انسان متقی و شود به یک انسانی که ضد حکم خدا و ضد حکم رسول خدا عمل می <تصفح> یک مسکل مرد خدا دیگه اگر در قریم و کسی مرد کس, کس فوت کرد خیر اسمق می برای غذا ده نفر رو در خانیشان ببرم نهی که من خود حکت فرامی و خود در از اونا چپه بکنم و او بیچاره مجبور شدن که قرض بکنم و بیا برای ما بکنم. خدايا ما تعهد ميكنين ك قلب ما مهربان باشه اگر مسكين و بيچاره اينو مي بينين غذاي خدا كترش نيست مي ما تعهد ميكنين ك اگر بر اولاد خود چيز خريرين و در بين همشهرياي ما كنون كسي مسكين و بيچاره باشه بر ازو هم 1 2 متر تكان مي خريرين خدايا ما تعهد ميكنم ك اگر اولاد معارفي ميكنم عرسي مي محفل عزورا بر اونج قران و حاکميت قران و در محفل هاي خوشي خود جاي مي مي كنم امروز متاسفم قرآن از ما مردم افغانستان خفه هست برادر عزیز قرآن از ما خفه هست محسید خانه خدا از ما خفه هست مای مبارک رمضان از ما خفه هست قرآن از ما چرا خفه هست بگه برادر تا که دخانیت مورده نشن مرا دخانیت نمیاری وقتی که من را در مردی پدر کلانت آوردی باز ایوازی که برای خود لباس و تکی توترون می باز بر من کفن می بر مدام کفن می بوشنی به قرآن را. قرآن از پیش ما خفه از بایی عمل کردم. قرآن میگه ما وقتی از هست تو خوش که داروزی تلاوت شوام داروزی به چه تلاوت شوام در خوشیت در ما پاینده قواق نه نیره خوشیم قرآن نیست قرآن از ما خفه هست از ما خفه هست خدایا در ماه رمضان کلشان مهیم در نماز تراوی که سمت هست پیامبر سلام چند شو خان دید که بیر زیاد شد پستر کرد پس ترک کرد که مردم فکر نکنند فرض است مسجد میگه خدای آدم های در تراوی میهند لیکن وقتی که تراوی خلاص شد باز نماز فرضی کس نمیه یه پچه مرد مسجد به خدای عزواجل شکایت میکنند قومی که در نماز سورش دو نفر سی نفر است و نماز خوفتنشت چهار نفر از کنشان پیش اون دو تا مسجد دست خدا به طرف خدای از میگه خدایا سریق قوم غذاب تنازل کو من خوبه رضی نیست که بر من کالین بخرید مسجد خوبه رضی نیست که برای من قندیله های زیبا زیبا بخری مسجد خوبه برای نیست مسجد خبر عزیز که شانه و شانه از عبادت خدایی از دواجه نبکنید. قرآن خفه. مسجد خفه. در نماز جماعت خفتن و صبح بغیر از رمضان در مسجد یک صفت پوره نمیشه. آیده او قریه رحمت خدا نازل میشه. رسول خدا خفه. دارسید. آروسی بچه سازنده رو میخوایی دونچی رو میخوایی دشمنای مره میخوایی آیا داروسیت رسول خدا رو دعوت کرده که ای رسول خدا تو هم میمان استی چه قسم رسول خدا میمان است و روز میگه یک خلیفی مسلمان ها بگه آله دعوت کرد گفتم شب میمان ما هستی. گفت من هستی گفتم من خب میمان دارم در دا خانه خود کس میمان صبح یک و جاسوس رو برگفت که صد بی مولوی دروغ گفته ایت خانیش میمان نبود من شب دیدم خانیش آرام آرامی بود آرام آرامی بود شخص آرام آرامی بود بفتاد ایچ کس نبود فران بودا بیری خلفه خاص گفت به اینجا که یه مارد کردم گفت میمان داشتون فلانی جاسوس ما گفت دروخ میگی گفت بود جاسوس تر دیفتا کی بود میمانه گفت یک سات قرآن خانده خدا یز دراجب میمانه ماند یک سات حدیث پیغمبر خانده رسول خدا میمانه, میمانه. و حد ساتان حکایات صحابه را خانده و کرام میمانه مانه. و دو خدا و رسول خدا و اطحاب کراما میمان میکنیم و یا دشمنای از اینا را میمان میکنیم که باید تالست بشه و بسیاری وقتا تا صبح تا صبح دلاز بیکر صبح میمانیم و بست قدیه را به خدا گرفتار میکنیم خدایی انسان که شکه اکتا نماز صوب مردم ها به واسه ساز و وقاسی خود مردم ها به خواه نمیمانند خدا خفه خدا وقتی از ما مردم خوش میشه که در منفل خوشی خود خدا را دعوت کنه در عروسی خود خدا را فراموش نکنه ای خمبر خدا وقتی از ما خوشحال میشه که در مراسم خوشی خود برای رسول خدا فرصت بده که چهار حدیثش در اونجا گفته شود. <متصفيق> <متصفيق> و همین کسی به اصحاب کرام مای رمزان وقتی از ما خوشحال میشه که حقیقتا ازای بدن ما با حکم خدا باشه و تعهد بکنیم که ای ماهی رمزان یازده دیگه هم همین قسم می باشیم یازده دیگه همی هم قسم می باشیم اما ملتی که بعد از رمضان کت عالم کت مسجد کت قرآن کت خدا کت قلس خداحافیزی می کنم و تا رمزان دیگه نمیم و خانه که بی است، و خانه که بی است، غذب خدا در خانه نازل میشه. ما رشته و پدر کلالایی با ایمان دیدیم که بر اولاد خود حضور میکنه که بشه این بلیاز خدا و غذب خدا رو در خانه ایمان نازل نکن نماز بخوان. دستای بچه خود نواسه خود پدر کلان ماش کرده بلی آز خدا نواسه دستای تماش میکنم اگر تو نواسه جوان بینماز باشی باشید خانه ما به خدا نازل میشه چرا که به جنت نیز جای بینمازان بود دوزخ سرای بینمازان بسوزد آتش تید جهنم سروتن دست پای بینمازان زخیش بینمازان زن نخواهی اگه مسلمان هستی کسی که کت خدا گرد نمی زنه ماه رمضان ما رجوع تو شکرت خدای عزوجل خدایا ما پیش از رمضان نمی فهمیدم نماز نمی خواندم آل خدای گرد تو جنگی بودم گپ نمی زدم ده خانه نمی ردم آل مای مبارک رمضان از خدای دوباره می این تو با برکت ماه مبارک رمضان این مای رحمت از خدای بالای ما رحمت نازل کو باد از رمضان همه به نماز میایم اما اون که در ماه مبارک رمضان نماز میکنه و بعد از دموزان یازده ماه دیگه که خدا جنگیست یازده ماه دیگه که جنگیست یازده ماه دیگه قرآن جنگیست باز همین میگه که ما شرط نامیدیم که گرفتیم. تو کسی یک خواب فامیله که بینماز از خیشی میکنن اولین حلقی لعنت در گردن خود میپرتن زی خیش بینمازان زن نخواهی مده دختر و شای بینمازان رسول مسلمان وقتی که دختر خدا برای کس میذا، احوال چند نفر در خانه شاهی میگنه تو بری بچه را بی می که نمازخانه است، پدرش نمازخان است و دختر خدا براش میذم. زخیش بین نمازان زن نخوی، مدی دختر به شاه بین نمازان. بلرزت کو گر او را میبیند، بی ز هیبت جایگاه بین نمازان از برای خدا. جایی که بی نماز ششه او جایی که کل ببینه در لرزه چرا که غزب خدا دارم اونجا نازل هست بچه ی جوانت نماز نمی خوانه نماز نمی خانه. همسرت نماز نمی جنگ جنگ نکو داوا نکو دستش همه آشکو بگو بیا بچه بیا دخترم بلی خدا کت خدایی از زوجه راشتی که در خانی ما غزب خدا می امروز از کسیتی بی نمازا غذب خدا سر ما نازل شدن از آمدن بیدین ها غذب خدا سر ما نازل شده. شده. آسمان آم خود خشک میکنن زمین چار خشک میکنه و خاطر بینماز و بیدین ها و وطن فروش امروز یک میلیون از دسم هاو میکنه یکونه میلیون شهید خون شهید اولاد شهیده خاک شهید امروز از دست ما و تو دلشان تکر که خدا را ما و خاطر بلند شدن بیرق لا اله الله خون خدا از دست دادین ولی ایمالله بیرق لا اله الله را زیرفا کرده و بیرق سنیب در هر جای بلند است اتا در بود جای خیش بین امازان زن نخواهی وده دختر و شاه بین پیامبر گفت این بیتی که گفتم من تو آشنای بین سهرگاهان به از ماوت سعدی چونی پند از برای بینمازان مسلمان های محترم امیدوار که خدای عزیز و جل دست دعا به پروردگار خود بالا بکنیم بگیم پروردگارا ما تعاوت میکنیم خدایا که بعد از رمضان ارتباط خدا با مسجد قطع نکنیم خدایا خدایا ما توبه کردیم دیگه که که تو جنگی بودیم بار از ریرم از آن خدا که تو آش چیستیم که تو دیگر می نماز میخانیم خدا آیا تو توبر ما توفیق بده که دل ما مهربان باشند خدایا با تو تعهد میکنیم که اگر برای اولاد خود چیز خریدیم برای یتیم و بیچاره و یتیم و بیوه و مسکین هم چیز بخریم خدایا تعهد میکنیم که غذایی را که میخوریم از فقیر و بیچاره هم باخبری کنیم بر از آنها هم در غذای خود سهم بدیم خدایا تو اعمال ما را قبول بکنی خدایا در دهی اول رحمت خدایا تو رحمت ما را از رحمتت به ما به خدایا بار دهی دوم شروع شدم دهی مغفرت است خدایا تو ما را هم در جمله بنده هایی که مورد مغفرت تو قرار گرفتند خدایا ما را هم قرار بدهی یا الوهی یا رب یارب یارب و او مسلمان ها گریه بکنین با کشم گریان از خداوند متعال جل جلو بخوای که خدایا در دهی و و دهی مغفرت از خدایا بالای ما مغفرت بکنی یارب يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والكرام يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفور يا رحمن يا ذا الجلال والكرام آسمان‌ها سر آسمان، یا جذب‌دار، یا رب را نمی‌دانم. تنها این ملکه در دهیل متقدرت خدا ما را از رحمت و از مغفرت محروم روند سر جت را پروردگاره ما ملت مسکید افغانستان شرق و غرب و کفر ممامل کن خدا که دین خدا در وطن ما که که به دو بخزید کار نکنن اگر قابل هدایت از در ایمان مبارک رمزان بر احمدتونه را هم هدایت بگو و اگر قابل هدایت نیست خدایا مثل فران و قارون غرقشان بگردون که مقتن ماست شدشان نجات بایده بگونه برواهدگارا خدایا بسیار گناهگار از دیل خدایا بسیار اشتماع کردین خدایا خدا گناه کردین خدای اگر گناه کردیم به خاطر معصیت و نفرماری خاطر عجیزی و بیچارگی بود پرواتگار آقاین ما این مورد و ما رحمت تنازل کن خدای آقاین مغفرت است و مغفرت میخواهیم خدای نامای ما را هم در لسط کسانه که مغفرت شدن سبت که پرواتگارا الهی تو زاد مهربان استی الهی تو غفار استی اله تو ستار هستی اله تو رحمان و رحیم هستی اله رحمت دوالای ملت و بیچاره و بیچاری منازل کن خدای و سلام و طب و در اداری مدفوال ما ردد در منطقه مختلف مدفوال مرسومه دنبارد میگرند اطفال و در بینی اینی قلد و بشانش مرمی رو میزنه خدا یا ای دشمنایت به امرای بیروه و به امرای طرف داراش خدایا مجاهدین مسلمان در هر جای تو از پیروزی و نصرت کو، خدا یا کسانی که به نام دین زد کلمه تو کار می کنه خدایا حلاق و برباد بگردانشانه خدای بی بیدین و کافر مثل اسرائیل و طرفدارش امریکار خدای پاک توسط بمبیعتوم خودشان خودشانه برباد و طبا بگردانه خدایا ظالمانا توسط خود ظالما هلاک بگردن خدایا ملت افغانستان ملت بیچاره ملت بی صواب، ملت مسكین، ملت رالديده و غمديد است. خداي ما را ديمتحان که قرار داریم خدای ما را خلاص کن خداي در آخرین لحظه كه علی سلام السلامه و روهم را ثابت پروردگار آخرین جمله ما را الله الله الله محمد رسول الله